سپاس بیکران از محضر ارزشمند جناب مولانا سپاهی بزرگوار بسیار فیض و بهره بردیم لحظات بسیار ناب و گرانبهایی رو برای ما به ارمغان آوردند امشب و در این لحظه و از این قاب و روزنه من و شما مفتخر و مایه مباهات ما هست که در حمایش بزرگ سیره نبوی قرار داریم و از شخصیتی بزرگی که دنیا را تکان داد و تحولی از این در صحنه بشریت برمغان آورد صحبت بکنیم شخصیتی که از عشق از محبت از انسانیت و از معنویت هرچقدر چقدر باز هم کم است هر آنچه خوبی هر آنچه زیبایی و هر آنچه بزرگی و عظمت بعد از خالق مهربانی یا هست در وجود عظیم الشأن پیامبر مهربانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست پیانبر اعظم صلی الله علیه و سلم به دلیل داشتن خلق عظیم و رحمت للعالمین نمونه و الگوی مکارم اخلاقی برای تمام انسان‌ها در تمام دوران هاست آن حضرت بنوان بهترین و کاملترین اصوه اصوه راستین بشریت است. نسبت به تمام مردم دلسوز و مهربان بود و در راستای متخلق بودن به اخلاق و کردار کریمانه بود که حضرت در طول بیست و سال نبوت توانست دلهای گمراهان بسیاری را شیفته مکتب اسلام کند آری پیامر بود که با کاشتن نهال مهربانی و محبت درخت های بسیاری از ایمان و معنویت را در امروزمان ما بر ماان آورد. در ادامه می از حضور ارزشمند یکی از مسئولین توانمند و سائی شهرمون استفاده بکنیم که پا به پای ما در همه جلسات بلخص معنوی حضور سمیمانه و مجدانه داره و این قطعاً انگیزه و و یک حس خاص خواهد بود نقطه عطفی خواهد بود وقتی مسئولین عزیز هم در این محافل ایمانی در کنارمان حضور داشته باشند دعوت میکنم از ریاست محترم شورای اسلامی شهرمان جناب آقای محمد امین محمدی به جایگاه تشریف فرما بشوند این بزرگوار با نوای صلاواتی بر محمد آل و اصحاب محمد لرف همراهی بفرماید به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و سلوات بر محمد و آل محمد و اصحاب پاکیشان عرض سلام و ادب و احترام دارم محظر همه شما خوبان نیکان عزیزانی که در این جمع حضور دارید عزیزانی که در این محفل نورانی آمدهی تا به ندای قلبتان گوش بدهید و در مورد خدای خود بیشتر بدانید و در مورد پیامبر خود. همچنین عرض خیر مقدم و خوش دارم خدمت بزرگواران عالم عزیزانی که حضور دارند در این جمع از استان عزیزمان حضور پیدا کردند و همچنین عزیزانی که در از های دیگر مقصودان خراسان در اینجا پیدا کردن تقدیر تشکر می کنم از حضور این عزیزان بزرگواران حقیقتاً قصد سکنرانی ندارم ولی به ببا وظیفه دوستان گفتن تقدیر تشکری بکنم وزید عزیزان و عرض خیل مقدمی داشته باشم بنده با عنوان یک انسان خاکی و یک کسی که عاشق پیانبر خود و خدای خود هست فقط این نیست که ما در این جمع حضور پیدا بکنیم و گوش بدهیم. مطمئناً من و شما به عنوان انسان باید عمل هم بکنیم. بابت این موضوع من از عزیزانی که این در این جمع حضور دارند خواهش دارم که ما رو ول نکنید. مردم این شهر، مردم این شهرستان، مردمی ای مهربان، دوست داشتنی هستند. مردمی هستند که عاشق خدای خود و پیامبرشان هستند. مطمئناً حضور همچین اندیشمندان بزرگ عالمان عزیز، در این شهرستان باعث تغییر خواهد شد. دلهای ما مطمئنا به سوی اسلاممان باستر خواهد شد و ما بهتر میپذیریم آن چیزی که در قلب ماست. همان عشق و محبتی که باید به پیانبر ما و خودمان خود داشته باشیم. بنده در جایگاهی نیستم که در مورد پیانبر خود بخوام صحبتیم کنم با وجود عزیزان بزرگوار این جمع هستند ولی گفتن از،, از پیانبر دل آدم پاک میکنه باید چند کلمه بگیم حقیقتا پیامبر ما پیامبر معرفت بود پیامبر عشق بود پیامبر رفت بود پیامبر گذشت بود همه خوبی هایی که یک انسان از اول تا الان باید داشته باشه در اون جمع بود اون هیچ کسری با کمی نداشت ما از رفتش میگیم از گذشتش میگیم این که اون یک فرمانده واقعی بود اون که پی... یک پدر واقعی بود یا یک یک دوست واقعی شکی درش نیست تاریخ به خودش ندیده همچین شخصی رو من خواهش کردم از عزیزان بخاطر همین موضوع که بیشتر بگن بیشتر بگن در مورد اسلام در مورد پیامبر در مورد خدا ولی اینکه چرا پیامبر اینجوری بود؟ چون یک اراده آهنین و فولادین داشت که ما نداریم این اراده رو ما نداریم اراده ما مثل یک چوبه که هر لازم ممکنه بشکنه کی داری میشکن چوبو؟ شیطان آیا ما توانایی رو داریم در مقابل اون وایستیم؟ چرا نداریم؟ چرا پیانبر ما، اصحاب ما داشتند و واستادند و جنگیدند؟ شیطان بود هیچ شخصی نبود مشکلی با پیانبر داشته باشه. مطمئنا شیطان بود که در وجود انسان‌های دیگر نفوذ می‌کرد و اونا رو بادر میکرد برای اسلام و پیامبر ما از روزی که انسان به وجود آمد خداوند آدم رو آورد فرشتگان رو گفت تعظیم کنید در مقابلش اکثرا پرسیدن چرا مگه این چی بهتر از ما داره خداوند گفت من به وجود آوردم چیزی که در این بود نهادینه کردم و گذاشتم که در شما نیست. شما اون چیزی که من شما رو خلق کردم همونید، بیشتر از اون نیستید، ولی این بالاتر از شماست. میتونه درک کنه. به زبان ساده‌تر میتونه بفهمه. روح خود شده میده بود خداوند. انسان توانایی داشت که فرشتگان نداشتم نه به خاطر این جسم خاکی بود. خاطر اون معرفتی بود که خداوند در وجود اون گذاشته بود. در قرآن هم اومده بسراحت. زمانی که آدم شروع میکنه به اسمای پیام به با... خداوند و گفتن و صحبت کردن همه فرشتگان میپذیرم، سجده میکنم شیطان سر باز میزنه خداوند راندش میکنه از اون روز تا به امروز شیطان ولکن نبوده تو این دنیا خاطرم همین تو بهشتم رفت آدم رو بس کرد باز شد که آدم از بهشتم رانده بشه اومد تو زمین حضرت آدم هاش متولد شدن رفت توشون نفوذ کرد باعث شد که اون یکی رو بکشه کشته رفت به انسان آموخت هزاران پیامبر اومدن و رفتند وظیفه شون چی بود هدایت انسان که ما انسانها رو برای راه راست هدایت بکنن که بفهمیم کدوایی که قدر بشناسیم در این دنیا فقط چند روزی هستیم برای اینکه آزمایش بشیم که ما بالاتر از موجوداتی هستیم که خداوند خلق کرده ولی شیطان نفوذ کرد هر روز قبایل اون قبائل رو می زدن کشتن به ناموس هم تجاوز می مال و اموال هم دیگه رو تصاحب می و می بدون رحم بدون شفقت شیطان باس می شد پادشان زیادی آمدند رفتند حاکمان زیادی آمدند رفتند بخاطر حب دنیا و زیبایی دنیا با همدیگه تجاوز میکردند و با همدیگه جنگ میکردند. 1400 سال پیش پیامبر مآمد، آخری پیامبر، آخری فرستاده، که انسان رو هدایت بکنه، کاملترین انسان خداوند برای ماشما پرستاده. همه چیزی که باید میگفت رو گفت، کوتایی نکرد. پیانبری نبود، مثل پیانبرهای گذشته که موجزه داشته باشه، مثل حضرت موسیٰ علیه السلام که اساش رو بندازه اجدا بشه یا مثل حضرت عیسیٰ مردگانو رو زلده بکنه، نه. پیانبری بود که علم رو به ما داد. کتاب خدا رو به ما داد که در این کتاب همه چیز کامل آمده است و هیچ چیزی کم و وجود نداره داشت. به ما آموخت که چطوری به هم رحم داشته باشیم چطوری به هم دیگه محبت بکنیم عشق بوارزیم درست از عزیزان گفتم که آنبر همه انسان ها بود برای قبیله و قوم خاصی نمی بود همه انسان ها رو در بر می گرفت به همشون مهربانی عشق گذشت آموخت به همهشون شون آموخت که از مال خودتون بگذارید به همسایتون بدید ولی ما چقدر پیرون بودیم چند راه آوروش و اون پیش گرفتیم این علم دنیا با علم آخرت هیچ مغایرتی نداره علمه انسان باید علم بیاموزه ما علم دینی یاد میاموزیم علم دنیا یاد میاموزیم. میاموزیم چه زیباست هر در کنار هم قرار بدیم یک عالم یک مولوی بزرگ ما بیاد در علم دنیا هم چیزهای بزرگی یاد بگیره و دانشمن بشه از اون طرفم دانشمند، از این طرفم هم دانشمند بنذاردون چی میشه انسان؟ کامل میشه چی میشه بچه های ما که دارن میرن مدرسه دولتی، مدرسه علمی هم برن؟ اونم یاد بگیرن زیباست ولی خب، شیطان نمیذاره شیطان این اراده و اختیار رو در وجود ما کشته و ما رو غافل کرده خیلی از انسانها به خاطر این دنیا به جان هم افتادن خوش آمد می گیم خدمت مهمان و گرانگدی که در این جمع حضور پیدا کردن بنده میخواستم زیاد جهاز وقت شما رو بگیرم ولی حقیقتن تو دلم بود و بازم خواهش و التماسی که از دوستان و بزرگوان ها که اینجا هستن دارم این محافظ رو در این شهرستان دوباره زنده بکنید حضور پیدا کنید مردم ما رو یاد بدهید گذشت چیست رفت چیست و بیام که پیانورشون این چیزها رو ازشون میخواست. مطمئنا هر شما بزرگان رو بهتر گوش خواهند داد میگم زیبایی دنیا ما رو وایس کرده که از خدای خود از پیامبر خود قافل بشیم دو مال تجملات یه منزل داری میگیم سه تا داشته باشیم یه ماشین داری میگیم چهار تا دا داشته باشیم این مال دنیا و حب دنیا ما رو قافل کرده و مطمئنا حضور اندیشمندان و بزرگانی مثل شما ما رو تغییر خواهد داد اساسی تغییر خواهد داد چون مردم ما مردم مهربانی هم. مردم خدا دوستی هستم و مردم بزرگواری هستم بعضی وقتا دیگه اینقدر تعصبات قومی و قبیله ای خانوادگی بر ما قابل. غالب میشه که ما یادمون میره این موضوعاتو که همه ما انسانیم همه ما با هم محبت بکنیم، گذشت داشته باشیم، با هم دیگه رو دوست داشته باشیم. چون پیامبر ما این چنین از ما می‌خواست. اگه ما روز آخرت رو میخوان دنیای دیگری رو می‌خویم که در بهشت بریم جاد اگر شرمنده پیامبر و خدای کدمونونه باشیم با اینا رو راید بکنیم هر چقدر نماز بخونیم روزی بگیریم ولی اینکه به پدر و مادر خودمون احترام نذااریم به همسایمون، به یه انسان دیگه مالش رو بخوریم حقش رو بخوریم فکر نکنم اون از ایزان گذشت بکنم در اون دنیا خاطر همین ما باید بیشتر بشناسیم. از منم بازم تشکر می از حضور این بزرگواران ارجمندی که در این محفل حضور پیدا کردند و واظم قدانی می کنم از حضورشون و انشالله شاءالله امیدواریم دوباره تکرار بشه و این مردم ما استفاده بکنن انشالله سری بعد با جمعیت بیشتری در مسجد جامع جناب مولوی مردم بیشتری بیان حضور پیدا بکنن و بشناسند این صحبت ها رو این عزیزان رو بشناسند و استفاده بکنیم از این بحث ها باز هم تقدیب تشکر می کنم و از حضور همه شما عزیزان در این جمع <تصفح> السلام علیکم و رحمت الله های بره